اصل <تصفح> تعریف کن امشب چه برنامه حیجان برای خود در نظر داری؟ <تصفح> توی حیات نشسته بودیم نیتین سرگرم فیزیوتراپی ویل بود آرام زنوهایش را تا سینه بالا می آورد و پایین می برد. ویل هم روی پتو دراز کشیده بود دستش را مثل وقتی که آفتاب میگیرند باز کرده بود من روی چمنهای کنارشان نشسته بودم و ساندویچم را میخوردم. حالا حال دیگر به ندرت وقت نهار بیرون میرفتم. چطور؟ همینطوری فقط کنشکاوی برام جالبه که بدونم وقتی اینجا نیستی سرت به چه کارای گرمه خب امشب قراره برم تماشای یک مسابقه درجه یک، ورزشای رزمی پیشرفته. بعد هم با هلیکوپتر به کارلو برای شام میرم، بعدشم موقع برگشت به خونه میرم به مهمونی کوکتل توی کانس. اوه، اگه اون موقع که ساعت دوه این اطراف باشی، سهره هم که برمیگردم برات برای میدم. کاغذ ساندویچ را کندم و به محتویاتش نگاه کردم. احتمالا کتاب و تموم میکنم ویل به نیتن نگاه کرد و لبخند زنان گفت <تصفيق> بده ده پوندی تو نیتن دست در کرد <مم> بازم به آنها نگاه کردم وقتی دیدم نیتن ده پوندی که به دست ویل گذاشت گفتم چی بازم؟ اه، ویل گفت که تو کتاب میخونی منم گفتم تلویزیون تماشا میکنی باز ویل برنده شد. ساندویچ دم دهانم ماند. باز برنده شد؟ شما سر اینکه وقتم و چطور میگذرونم و چقدر زندگی نواختی دارم بندی میکنین؟ ویل گفت اسمشو شرطبندی نمیذاریم. ولی شرم نمحسوس حاضر در چشمانش خلافش رو میگفت. کمرم را صاف کرد. بذار ببینم چی شد. شما دو نفر ده پوند شرط بندی میکنین که من جمعه شب توی خونه کتاب میخونم یا تلویزیون تماشا میکنم؟ ویل گفت. <تصف> نه. اغلب فکر میکنم که رفتی و داری رفیق دونده تو تماشا میکنی. نیتن پای ویل را پایین آورد دستش را صاف کرد و از مچ به بالا ماساج داد. اگه بگم اصلا از اینجور کارا نمیکنم چی؟ نیتن گفت. نه بابا. اسکناس را از دست ویل قاپیدم. این پول لعص باید به من برسه. چون هر دو اشتباه کردیم. ویل اعتراض کرد. ولی خودت گفتی که میخوای کتاب بخونی. پوندی را در هوا چرخاندم. مال منه. دارم میرم سینما. طبق ماده قانونی عواقب ناخواسته یا هر هرچی اسمشو بذارید. بلند شدم، پول را توی جیبم گذاشتم، بقیه ساندویچ را توی پاکت قهوهای چپاندم. همینطور که از آنها فاصله میگرفتم، نیشم تا بناگوش باز بود. خیلی عجیب بود، حس کردم چشمانم از عشق می سوزد، واقعاً بیدلیل بود. آن روز صبح پیش از آمدم به گرنتا هاوس یک ساعتی صرف تقویم کردم. بعضی روزها روی تختم دراز می کشیدم و از آن دور به تقویم چشم می دوخدم. ماشی که جادوی دستم بود و فکر می کردم ویل را کجا می توانم ببرم. هنوز در خودم نمی که بتوانم ویل را راضی کنم به راهای دور برویم. فکر اینکه بتوانم ویل را به سفری شبانه روزی ببرم حتی به کمک نیتن وحشت به جانم میانداخت. انداخت. روزنامه های محلی را زیر و رو کردم. مسابقه های فوتبال و جشن های محلی نظرم را جلب کردند. ولی از وقتی به مسابقه اسب دوانی رفته بودیم، میترسیدم باز هم صندلی چرخدار وید توی علف ها گیر کند. قبول داشتم که حضور در جمعیت باعث می شود حس کند که به نمایش گذاشته شده. برنامه های مثل اسب سواری را باید از دور خارج می کردم. چون در ای مثل ما به طرز غریبی همیشه تماشاچی زیادی داشت. میدانستم دوست دوستم ندارد بیاید و پاتریک را در حال دویدن تماشا کند. کریکت و راگبی هم توجهش را جلب نمیکرد بعضی روزها که میدیدم هیچ فکر تازهی به ذهنم نمی رسد. احساس اجزانا توانه می کردم. شاید حق با نیتن و ویل بود و من به زندگی یک نواخت و خسته کننده یادت داشتم. شاید بی ترین آدم دنیا بودم. و نمی توانستم کاری کنم که شوق و اشتیاق فیل برای زنده ماندن برانگیخته شود کتابی تلویزیون وقتی چون اصار نظری در موردم می چطور می توانستم جور دیگری فکر کنم؟ بعد از رفتن نیتن فیل آمد آشپزخانه. سر میز کوچک نشسته بودم و داشتم برای شامش سیب زمینی پوست می وقتی در چارچوب در ایستاد سرم را بالا نکردم تا نگاهش کنم. مدتی همانجا ایستاد و تماشایم که وقتی دیدم اینطور زیر بین هستم سرخ شدم. بالاخره به حرف آمدم. ببین لابد خیلی به نظر افتضاح اومدم. منم باید اشاره می کردم که تو خودت هم نشستی و هیچ کاری نمی کنی ویل گفت یادم نمیاد نیتم پیشنهاد درجه یکی داده باشه و بخواد منو به مجلس رخص ببره میدونم شوخی بود تیکه بزرگی از پوست سیب زمینی را کندم. اما تو کاری می کنی که حس کنم چه آدم بی خودی هستم وقتی سریع نواختی زندگیم شرط بندی می کنی مجبوری بذاری بفهمم. تو نیتن نمیتونستین بین خودتون نگهش دارین؟ شوخی بین خودتون لحظاتی چیزی نگفت بعد که سرم را بالا گرفتم دیدم همینطور به من زده است گفت ببخشید ولی به قیافت نمیاد خب شاید دلم میخواست بشنوی میخواستم متوجه روزهای زندگیت باشی ببینی داری چی کار میکنی متوجه چی؟ این که دارم روزای رو به باد نیدم؟ دقیقا وای خدای من فیل ای کاش اینقدر به هم نمی گفتی چی کار کنم اگه فقط میخواستم تلویزیون تماشا کنم چی؟ اگه کاری غیر از کتاب خوندن نمی کردم چی؟ صدایم تیز و جیغ مانند شده بود وقتی خسته و کوفته به خونه برمی گردم چطور؟ اگه دلم نخواد روزای رو با ماجر پر کنم چطور؟ ویل با لحن آرامی گفت ولی یه روز حسرتش را رو خواهی خورد میدونی اگه جای تو بودم چیکار کار میکردم؟ پوسکن را پایین گذاشتم میدونستم میخوای اینه بگی آره ذره ای سر سوزن ناراحت نیستم که بهت میگم کلاس شبانه میرفتم دوره ی تراحی یا خیاطی میدیدم یا هر چیز دیگه که دوست داشتم به بلباسم اشاره کرد. پیراهن گل درشت دل قدیمی از پارچه‌ای که روزگاری پرده خانه ای پدربزرگ ها بود. اولین بار که بابا این پیراهن را دید، انگشتش را به طرفم گرفت و گفت: هی لو، این چه لباسی است پوشیدی؟ کمی به خودت بیا. پنج دقیقه ای طول کشید تا خندش تمام شد. ویل ادامه داد: دوباره چیزایی میرفتم که خیلی هم پول لازم نداشتن. کلاس ورزش شنام، کارهای دافتربانه، حالا هرچی، موسیقی یاد میگرفتم، سگ دیگر به گردش طولانی میبردم یا... با اوقات تلخی گفتم. خیلی خوب، خیلی خوب، متوجه شدم، ولی من ویلترینر نیستم. شانس آوردی. کمی ساکت نشستی. ویل صندلی چرخدارش را به داخل هدایت کرد. سطح صندلی را بالا آورد در نتیجه با میز آشباسخانه هم زد شد. گفتم خب تو خودت اوقات فراغتتو چی چیکار میکردی؟ خیلی خوب بودن؟ وقت فراغت زیادی نداشتم ولی تلاش میکردم هر روز برنامه ای داشته باشم. میرفتم اسکوهاش و سخر نوردی توی سالن های سرپوشیده. میرفتم کنسرت رسورانهای جدیدی که نرفته بودم. با لحنه میزی گفتم آره؟ وقتی پول داشته باشی کاری نداره میرفتم دو آره میرفتم دو وقتی ابرو بالا دادم گفت تلاش میکردم زبونهای جدید یاد بگیرم برای مواقعی که میخواستم برم جاهای جدید رو ببینم دوستان ها میدیدم شادم افرادی که فکر میکردم دوستم هستند لحظه مکس کرد برنامه سفر میریختم دنبال جاهایی میگشتم که نرفته بودم چیزهای هیجان انگیزی که از محدودم بیرونم بکشه یه بار تمام کانال رو شنا کردم آره همین که خواستم چیزی بگویم اضافه کرد میدونم پول لازمه ولی نه همیشه تازه تو میدونی از کجا پول در می آوردم. مردمو با شغلت میچپیدی؟ هر کاری که خوشحالم میکرد انجام می دادم. هر کاری که دوست داشتم خودم طوری تربیت کرده بودم که دنبال شغلی برم که هر دوی اینها توش باشه. طوری حرف که انگار آسونه. آسونه. گرچه کارهای سخت زیادی هم هست و مردم نمیخوان خیلی تمبر کار بدن. پوست کندن سیب زمینی تمام شده بود. پوست‌ها رو توی سطل زباله انداختم تا هم روی اجاق گذاشتم تا برای بعد آماده باشه. برگشتم و به کمک دستم خودم رو بالا کشیدم و روی میز نشستم. روبروی ویل. پاهایم از میز آویزان بودند. حسابی کیف دنیا رو بردی نه؟ آره. حسابی. کمی جلوتر آمد. سطح صندلی چرخدارش را بالا آورد و هم شدیم. کلارک. واسه همینه که از دستت هرس می‌خوام، کفرم و در میاری. چون تموم این استعدادها و تموم این... شانه بالا انداخت انرژی و سرزندگی و نگو پتانسیل پتانسیل آره پتانسیل نمیتونم ببینم به خاطر من تا تم به چنین زندگی یک نواختی بدی زندگی در یک شایه 7 کیلومتری کسی هم نیست تا رو به هیجان بیاره یا تشویقت کنه یا چیزایی نشونت بده که سر به دوران بیفته و شب نتونی بخوابی اینم روش توه بر اینکه بهم بگی باید کاری با ارزشتر از پوست کندن سیبزمینی تو انجام بدم دارم بهت میگم که بیرون دنیای بسارگیه البته خیلی ممنون میشم که اول سیب زمینی های منو پوست بگیری لبخندی به من زد من هم ناخدگاه لبخند زدم گفتم تو فکر نمی جمله ام رو تمام نکردم ادامه بده فکر نمی حالا برای تو سخت دره که خودتو وفق بدی چون همه این کارها رو کردی میخوای بپرسی که آرزو می کنم کاش این کارها رو نکرده بودم؟ فقط دارم فکر می کنم که شاید برای تو راحت تر بود شاید اگه یه زندگی جمع جورتر ساده تر داشتی حالا راحت تحمل تعمل می کردی من هرگز و هرگز افسوس گذشتم و نمی خورم. کارهایی که کردم چون آدم وقتی گرفتار چنین روزهایی شه، خاطرات تنها چیزی هستن که میتونه به اونا فکر کنه. <تصفيق> لبخند زد. لبخندی جدی و خشک انگار زورکی بود. در نتیجه اگه از من میپرسی ترجیح میدم از خاطرات خوشم حرف بزنم. منظره قلع از عغزی فروشی یا ردیف دیدنی مغازهای پایین میدون. آره، خدا رو شکر زندگیم خوب بود. از روی میز سر خوردم و رفتم پایین. دوباره احساس کردم در این بحث و گفتگو کم آوردم یک جورایی خودم را در مخمسه می دیدم ولی نمی دانستم چطور تخت گوشت را از آبچکان برداشتم لو متاسفم بابت موضوع پول اشکالی نداره برگشتم و تخت رو زیر شیر آب کشیدم ولی از سرت بیرون کن که ده و برگردونم. دو روز بعد کار ویل به بیمارستان کشید. عفونت داشت. می گفتن باید اقدامات احتیاطی انجام بدهند. ولی پیدا بود که ویل به شدت درد می بعضی معلولان حس نداشتند. اما ویل با اینکه بدنش در برابر درجه حرارت مقاومت می کرد زیر هم درد داشت و هم حس لامسه. دوبار به عیدتش رفتم. برایش آهنگ بردم و چیزهای خوشمزه تا بخورد. کنارش ماندم تا حوصلهاش سر نرود اما فورا فهمیدم و یک جورایی حس کردم که ویلیوس ندارد در آنجا توجه ویژه ببیند به من گفت که برگردم خانه و خوش باشم اگر یک سال قبل بود این روزهای فراغت را به یللی تللی میگذراندم و وقت می میکردم توی فروشگاه میگشتم شاید هم میرفتم و ناهار را با پاتریک میخوردم مینشستم و برنامه های تلویزیون را تماشا میکردم. لباس هایم را مرتب میکردم. خواب مفصلی میکردم. ولی حالا به شدت بیقرار بودم. به شدت به هم ریخته. صبح انگیزه ای برای بیدار شدن نداشتم. دلیلی که روزم را با آن شروع کنم. دمدمای ظهر بود که به ذهنم رسید از این لحظات باید حداکثر استفاده را ببرم. رفتم کتابخانه و شروع به کار کردم. به هر وبسایتی که مربوط به معلولان بود، سر زدم و چیزهایی دستگیرم شد. از کارهایی که بعد از بهتر شدن حال ویل می توانستیم انجام بدهیم، فهرستی تهیه کردم. کنارش هم تجهیزات یا وسایل مورد نیاز هر کدام از برنامه‌ها را نوشتم. اتاق گفتگوی افراد آسیب دیده نخایی را پیدا کردم و دیدم هزاران زن و مرد در شریعت ویل هستند. با زندگیهای پشت پرده در لندن سیدنی، ونکوور حتی ته همین خیابان به کمک دوستان و اقوام زندگی میگذرانند حتی بعضی اوقات به ترزی بسیار عصبوار تنها هستند در آن سایت من تنها پرستار علاقه من نبودم دوست دخترهایی بودند که میپرسیدند چگونه میتوانند اعتماد به نفس را به دوستشان برگردانند تا از خانه بیرون بیایند همسرانی بودند که می‌خواستند از آخرین تجهیزات درمانی باخبر شوند تبلیغات فروش سندلی چرخدارهایی بود که روی شنوماسه راه می بالابرهای بالاورهای هوشمند و وسایل بادی برای حمام و شستشو. بحثایشان هم رمز داشت. فهمیده بودم که S.C.I. به معنای آسیب نخواه است و U.T.N. عفونت آسیب مهره 4 و پنج و تر از آسیب مهره یازده و دوازده است. چون در حالت دوم فرد می دست و تنش را حرکت بدهد. چه داستانهای عشقی و بیوفایی‌ها که نبود. همسرانی که دست و پنجه نرم می‌کردند تا خود را با همسر توانخواه و بچه کوچکی شن تطبیق دهند. زنهایی بودند که احساس گناه می‌کردند و خودشان را نمی‌بخشیدند که از خداوند خواسته بودند شوهرشان را از دست و پا بیاندازد تا نتوانند کتکشان بزنند. حالا هم فهمیده بودند که هرگز نباید از این نفرینها کنند. شوهرانی بودند که می‌خواستند همسرشان را ترک کنند ولی جرأت نمی‌کردند و از واکنش دیگران واهمه داشتند نومید بودند خسته و درمانده کلی هم تنز سیاه بود لطیفه‌ای درباره ترکیدن کیسه‌های اطرار کارهای احمقانه دیگران که از روی خیرخواهی بود یا حوادث ناگواری که از سر مستی افراد رخ داده بود افتادن از صندلی چرخدار که خیلی عادی بود بحث خودکشی هم مطرح بود. معلولانی که قصد خودکشی داشتند و آنهایی که از معلولان میخواستند به خود زمان بیشتری بدهند و نگاه تازه‌ای به زندگیشان پیدا کنند. تمام مطالب را خواندم و از خطر‌هایی که وجود داشت مطلع شدم. حس می کردم دوزکی وارد مغز ویل شدم و سر از ذهنیتش درآوردم. نفس عمیقی کشیدم و نوشتم. سلام من دوست و پرستار سی 35 ساله با آسیب مهره 56 هستم. قبلا بسیار فعال و موفق بود. حالا هم به سختی می تواند خودش را با شرایط جدید وفق دهد. در حقیقت میدانم که دلش نمیخواهد به زندگی ادامه دهد. من هم در تقلا هستم راهی پیدا کنم که تغییر عقیده بدهد و به زندگی امیدوار شود. کسی هست که بتواند راهنمایی کند و بگوید چه کنم. دنبال ایده های ای هستم که بتواند او را سرحال بیاورد یا راهی که بتوانم نگاهش را به زندگی عوض کنم. از هر فکر رو ایده استقبال می شود. تشکر. اسم خودم را هم زنبور پرکار گذاشتم. به پشت صندلی تکیه دادم. چند لحظه ناخو نشستم را جویدم و بعد دکمه ارسال را زدم. صبح روز بعد وقتی پشت کامپیوتر نشستم دیدم چهارده نفر جواب دادند. وارد اتاق گفتگو شدم. با دیدن فهرست اصامی چند بار پلک زدم. از همه جای دنیا جواب داده بودند در هر ساعتی از شبانه روز. اولی این بود. زنبور پرکار عزیز. به جمع ما خوش آمدی. مطمئن هستم دوست تو با داشتن کسی مثل تو دوباره به آرامش خواهد رسید. با خودم گفتم ولی من مطمئن نیستم. ادامه جواب را خواندم. بیشتر ما که اینجا هستیم در زندگی من به شکلی ضربه خورده ایم. دوست تو هم ضربه خورده ولی نگذار دوستت تو را از خودش دور کند. به او گوش زد کن که ما در جایگاهی نیستیم که تعیین کنیم کی به دنیا بیاییم و کی از دنیا برویم. خداوند صاحب اختیار است و به خواست او زندگی دوستت تغییر کرده است. مسلحت خداست و حتماً حکمتی در کار است. نیمه کاره ول کردم و رفتم سراغ جواب دفم. زنبوره عزیز، چاره ای نیست. فلج از چهار دست و پا آدم را از همه چیز نومید می کند. اگر دوستت ورزشکار و اهل فعالیت‌های بدنی بوده، پس حالا برایش سختتر است. با این همه چیزهایی بودند که به من کمک کردند. مصاحبت و معاشرت زیاد. حتی وقتی هم دوست نداشتم. غذای خوب، دکترهای خوب، دوا و درمان خوب. اگر هم لازم شد داروی ضد نگفتید مقیم کجا هستید؟ ولی اگر بتوانید متقاعدش کنید که با اعضای جامعه ای سی آی حرف بزند بسیار مفید است. من اولش تمایلی نداشتم. فکر میکنم بخشی از وجودم نمیخواست قبول کند که از چهار دست و پا معلول هستم. اما وقتی بدانی که فقط خودت نیستی خیلی موثر است. هرگز هم نگذار فیلم هایی مثل زنگ قواسی و پروانه را ببیند. مایه قصه اش میشود. ما را از اقداماتی که کردی بی خبر نگذار. با آرزوی موفقیت ریچی مطالبی درباره فیلم زنگ قواسی و پروانه خواندم. اینطور که وبسایت می گفت داستان زندگی مردی که فلج می شود و تلاشهایش برای ارتباط با دنیای بیرون. اسم فیلم را رو روی کاغذ نوشتم، نمیدانستم چرا اسمش را یادداشت کردم. میخواستم یادم باشد که نگذارم ویل این فیلم را ببیند یا فقط میخواستم یادم نرود که فیلم را ببینم. دو جواب بعدی از کلیسای منتظران ظهور روز هفتم و مردی بود که راههای های پیشنهادیش برای تقویت روحی ویل قطعا خارج از تعهد کاری من بود. صورتم از خجالت سرخ شده بود. تونتون پایین صفحه رفتم. نگران بودم کسی از پشت سر به صفحه کامپیوترم نگاه کند. مکسی روی جواب بعدی کردم. سلام زن بود پرکار. چرا فکر میکنی دوستت، فرد تحت مسئولیتت یا هر چیز دیگر باید تغییر عقیده بدهد؟ من خودم اگر راهی پیدا میکردم که بتوانم از راه تقدیر و سرنوشت از دنیا بروم و اگر میدانستم خانوادم را نابود نمیکند، حتماً این کار را میکردم. الان هشت سال است که اسیر این صندلی چرخدار لعنتی هستم و زندگیم سراسر خفت و نومیدی است. آیا واقعا می توانی خودت را جای او بگذاری؟ میفهمی یعنی چه که حتی قادر نباشی بدون کمک رودت را خالی کنی؟ میفهمی یعنی چه که تا آخر عمر زمین گیر باشی و نتوانی بدون کمک بخوری، لباس بپوشی و با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنی؟ هرگز نتوانی دوباره ازدواج کنی؟ می توانی تصور کنی که چیزی جز رنج و بیماری و حتی دستگاه تنفس مصنوعی در انتظارت نباشد تو فرد مهربانی به نظر میرسی و مطمئن هستم نیت خیر داری اما شاید هفته دیگر تو پرستارش نباشی کسی باشد که ناراحتش کند حتی شاید دوستش هم نداشته باشد و این هم مثل بقیه چیزها از کنترل او خارج است ما که به این بلا دوچار شده این میدانیم تقریبا در اختیار ما نیست که تصمیم بگیریم چه کسی به ما غذا بدهد لباس تنمان کند ما را بشوید داروی من را بدهد. زندگی با این افکار رنجاور است بنابراین به نظر من سؤال بی ربطی کردی اینها کی هستند که بگویند زندگی ما باید چطور باشد اگر زندگی دوستد روال طبیعی ندارد بهتر نیست بپرسی چگونه می توانم کمکش کنم تمامش کند موفق باشی نیروی جی میزوری آمریکا به پیام انگشتانم روی صفحه کلید بی حرکت ماندند بعد رفتم با این صفه چند بعدی هم از معلولان بود نیروی جی را به خاطر حرفای نامید نا کنند سرزنش کرده و گفته بودند امیدوار هستند و زندگیشم با ارزش است. بعد داروی ضد افسردگی، ماساج، معجزه و بهبودی بعضی افراد داستانهایی از اینکه چگونه زندگی ارزشمند شد چند توصیه هم بود نوشیدن شراب، موسیقی، نقاشی به خصوص کیبورت شده برای معلولان گریس سی از بیرمنگام گفت یک شریک زندگی اگر عشقی در قلبش باشد حس می کند که می تواند برایش زنده بماند بدون آن من تا حالا تا کفن پوسنده بودم تا مدت پس از اینکه از کتابخانه بیرون آمدم حرف آخرش در سرم می پیچید. ویل روز پنجشنبه از بیمارستان مرخص شد. با اتومبیل رفتم دنبالش و او را به خانه برگرداندم. رنگ پریده و خسته بود. در تمام طول راه بیحال و بی به بیرون پنجره زل زد. وقتی پرسیدم حالش چطور است، جواب داد اینجور جاها اصلا نمی خوابید. همیشه دورو کسی هست که ناله کند. به فیل گفتم که آخر هفته را وقت دارد تجدید قوا کند. اما بعدش برنامه برای بیرون رفتن دارم. گفتم که به توصیهش عمل کردم و دارم چیزهای جدیدی را امتحان می کنم. او هم مجبور است هم بیاید. تغییر نمحسوسی در طرز برخوردم ایجاد شده بود. میدانستم تنها از این طریق است که می توانم او را با خودم راه کنم. در حقیقت برنامه مفصلی برای دو هفته بعد چیده بودم. با دقت و با خودکار سیاه روی تقویم برنامه ها را نوشتم. با خودکار قرمز اقدامات احتیاطی که از پیش باید در نظر می گرفتم. خودکار سبز هم وسایل مورد هر باری که چشمم به پشت در اتاقم میافتاد، کمی احساس هیجان کردم. بخشی به دلیل برنامه دیزی هایی که کرده بودم، بخشی همچون امیدوار بودم این برنامه ها نگاه ویل را به زندگی تغییر دهد. همانطور که پدرم همیشه می گفت، مغز متفکر خانواده من خواهرم بود. با سواری که پارکینگ را دور زدیم تا جای پارک مناسبی پیدا کنیم، ظرف کمتر از 20 دقیقه به نمایشگاه نقاشی رسیدیم. از نمایشگاه دیدن کردیم، ولی هنوز در سالن را پشت سرش نبسته بودم که گفت افتضاح بود. خوشم نیامد. دلیلش را پرسیدم. گفت وقتی خودم نتوانستم بفهمم توضیح نقاش هم بیفایده بود. سینما هم منتفی شد. یکی از مسئولانش با اصخایی گفت که آسانسور کار نمی کند. بقیه سرگرمیها مثل رفتن به شنا که ناموفق هم هماعاب درآمد به برنامه ریزی دقیقتر و زمان بیشتر نیاز داشت. پیش و پیش به استخر زنگ زدم و نیتن برای اضافهکاری هماهنگ کردم اما وقتی به مرکز تفریحی رسیدیم ویل حاضر نشد از اتومبیل پیاده شود. توی پارکینگ ساکت و خاموش فلاس که شکلات داغ را خورد و بعد هم قاطعانه گفت که برگردیم. چهارشنبه بعد به کنسرت خانندهای رفتیم که قبلا یک بار در نیویورک برنامه‌اش را به طور زنده دیده بود. خوشبختانه برنامه خوبی از کار درآمد. روز بعد ویل را به برنامه شراب چشی بردم. قسمتی از جشنی بود که در تاکستان یک فروشگاه حرفه‌ای شراب برگزار میشد. نیتن به زور از من قول گرفت که نگذارم ویل زیاده روی کند. ویل چنان کارکشته بود که وقتی لیوانها را زیر بینیش میگرفتم و پیش از چشیدن میدانستم چه زیادی دارند. به خودم فشار میآوردم وقتی ویل شراب را به لیوان توف میکند، احجبیف نکنم. مسخره بود. نگاهم میکرد و میگفت که خیلی بچه ای. صاحب فروشگاه وقتی دید کسی با صندلی چرخدار آمده است، اولش خوشش نیامد، ولی بعد تحت تأثیر قرار گرفت. کمی که گذشت صاحب فروشگاه نشست و بطری بیشتری باز کرد و با ویل هم درباره انگور و منطقه حرف زد. من هم در اطراف پرسه می و به مارک بطری نگاه می راستش کمی هم هم سر رفته بود. ویل با سر اشاره کرد که کنارش بنشینم. کلارک، بیا و کن. نه. مادرم یک کار زشتیه چیزی رو از دهنمون برگردونیم و تف کنیم. دو مرد طوری به هم نگاه کردند که انگار با ای مواجه شدهاند ویل حالا کمتر شراب را از دهانش به لیوان برمیگرداند به طرز شکپرانگیزی هم تمام بعد از ظهر را حرافی کرد تا چیزی میشد می‌خندید البته بیش از همیشه کل شقی کرد بعد موقع برگشت به خانه از منطقه‌ای گذشتیم که معمولا از آن راه نمی آمدیم. همینطور که توی ترافیک بودیم من نگاهی به بیرون کردم و چشمم به یک مرکز خالکوبی افتاد. گفتم همیشه عاشق خالکوبی بودم. باید میدانستم که نباید از اینجور حرفا به زد. چون معمولا به بحث ادامه میداد و دیگر ولکان معامله نبود. برای همین درجا پرسید که چرا تا حالا این کار را نکردم. فکر کنم فقط به خاطر حرف دیگران. چرا؟ مگه چی میگن؟ پدرم از خالکوبی متنفره یه بار دیگه بگو چند سال داری؟ <تصفيق> پاتریکم بدش میاد خودش وقت کاری نمیکنه که تا بدت بیاد؟ میدونم تحت فشار قرار میگیرم و فوری پشیمون میشم با لیزر میشه پاک کرد از آینه اقب ای نگاهش کردم چشمانش میخندید گفت ولکن حالا بگو چه طرحی دوست داری؟ میدانستم خودم هم لبخند بر لب دارم مار نمیکشیدم یا اسم کسی؟ منم فکر نکردم شکل قلب خالق کنی با کلمه مادر زیرش <تصفح> قول میدی نخندی <تصفح> خودت میدونی که نمیتونم. <تصفح> خ زربول مثل هندی سانسکرید یا اینجور چیزا که نمیخواه خالکوبی کنی آره؟ آنچه مرا نکشد قوی ترم می نه. زنبور میکشیدم، زنبور زرد و سیاه. عاشقشونم. سری تکان داد. طوری که انگار به نظرش کاملا منطقی آمده است. کجای بدنت تو میکردی؟ شایدن نبعد این سآلو میکردم شانه بالا انداختم مم. شونه باسن نمیدونم ویل گفت بیست چرا؟ چیزی شده؟ خوبی؟ همینجا بیست ببین اونم جای پارک سمت چپ ماشین را کنار جدول خیابان پارک کردم صورتم را برگرداندم و نگاهش کردم حالا برو. ببینم امروز کار دیگه ای که نداریم کجا برم؟ مرکز خالکوبی زدم زیر خنده که <تصفح> اینطور چرا نری؟ تو شرابارو توف نکردی قورت دادی جوابمو ندادی چرخی زدم ویل جدی بود نمیشه الان برم و خالکوبی کنم همینطوری که نیست چرا چون م... به خیابان و به مرکز خالکوبی نگاه کردم تابلوی نئون به شکل قلب بزرگ روی پنجره نسبتا دود گرفته یه مرکز خالکوبی دیده میشد با چند عکس قاب گرفته از آنجلینا جولی و میکی رورک. صدای یه از افکارم بیرون آورد. اگه تو بکنی منم نمی میکنم؟ به طرفش برگشتم. تو هم می کنی؟ اگه باعثشه برای یه بارم که شده از لاک خودت بیای بیرون. اتومبیل را خاموش کردم همینطور نشستیم و به همه همه خفه و گرفته اتومبیل هایی که از کنارمان در خیابان رد می شدند گوش دادیم. برای همیشه میمونه؟ نه. نه برای همیشه م... پاتریک بعدش میاد همینطور میخوای ادامه بدی؟ شاید از سوزن آلوده هپاتیت بگیریم بعدم بمیریم مرگ تدریجی وحشتناک و تلخ نگاهش کردم. احتمالا الان انجام نمیدن همین الان که نمیشه شاید نه به بریم و بپرسیم دو ساعت بعد از مرکز خالکوبی بیرون آمدیم هشتاد پوند پیاده شده بودم جوهر هنوز خوش نشده و پد جراحی روی باسنم بود تاتوکار می گفت که چون کوچک است در یک جلسه میتواند تواند ترحش را بکشد و رنگ کند من هم قبول کردم و کار انجام شد شاید همونطور که حتما پاتریک می گفت تا آخر اون مایه وحشتم بود زیر پانسمان سفید یک زنبور اصل پشمالو و چاغ و کوچولو جا خوش کرده بود هرهش را از تصاویر پلاستیک کشیدهی داخل کلاسور که تا تو موقع ورود نشان مانده بود انتخاب کرده بودم. از هیجان زیاد عصبی بودم. همش به پانسمان دست میزدم تا بتوانم نگاه کوچکی هم شده به خالکوبی بیاندازم ولی ویل مانع میشد و می گفت که شاید مشکلی پیش بیاید. آنجا که بودیم ویل به طرز عجیب و غریب خوشحال و سرحال بود. کسی توجه خاصی به ویل نکرد مسئولین مرکز می که تا حالا برای چند توانخواه خالکوبی کردند. شاید برای همین بود که برخوردشان چنان عادی بود که ویل احساس راحتی می‌کرد. وقتی ویل گفت که سوزن را حس می همه تعجب کردند. شش هفته قبل یک طرف پای توانخواهی را به طور کامل خالکوبی کردند. تاتوکاری که گوشواره گوشش بود ویل را به اتاق بغل برد و به کمک تاتوکار من او را روی میز مخصوص خوابند. لایه در باز بود و من پاهای ویل را می‌دیدم. نجواها و خنده‌های دو مرد را که سرگرم کار بودند شنیدم. بوی تند ماده ضد عفونی کننده مشامم را پر کرده بود. وقتی اولین نوک سوزن به پوستم زده شد، لبم را گاز گرفتم. مصمم بودم نگذارم ویل جیغم را بشنود. تمام حواسم به اتاق بغلی بود. تلاش میکردم بفهمم چه میگوید کنچکاف بودم بدانم چه طرحی را خالکوبی می کند در اتومبیل را باز کردم و سطح شیبدار را پایین دادم. گفتم ویل ترینر تو بد جوری مخم نیشم تا بناگوش باز بود و نمی توانستم مهارش کنم ببینم نگاهی به خیابان انداختم بعد پد پزشکی را کمی از روی باسنم کنار زدم عالی از زنبور کچولود خوشم اومد <تصفيق> باقی عمرم مجبورم جلوی پدر و مادرم شلوار فاق بپوشم کمکش کردم روی سطح شیبدار برود گفتم توجه داشته باش اگه مادرت بفهمه به مادرم دا. میگم که دختر توی مشتمه سازمانی از راه بدرم کرد خوبه ترینر حالا تو مال خودتو نشون بده با خون سردی به من زد. لبخند نصف نیمه بر لبانش ظاهر شد. گفت مجبور میشی وقتی رسیدیم خونه پانسمانش رو عوض کنی اشکال نداره. اینگه دفعه اوله. پس بلوز آب بزن زنبالا. سمت راست. از صندلی جلو خودم را خم کردم. بلوزش را بالا زدم و زیر پد را نگاه کردم. روی پوست رنگ پریدش یک مستطیل سفید و سیاه بود. به قدری کوچک که مجبور شدم دوبار نگاه کنم تا بفهمم چه نوشته است. تاریخ انقضا 19 مارس 2007. ماتم برد. خندیدم. بعد چشمانم پر از عشق شد. تاریخ روز تصادفم. آره. سرش را رو به آسمان گرفت. آ کنا، تو رو به خدا احساساتی نشوم. فقط برای خنده است. خنده داره. از طرفی واقعا مسخره. نیتن خوشش میاد. آه دست بردارین. بیا به خودت نگیر. مگه بدن سالمم مزایه کردم. آره؟ بلوزش را پایین کشیدم. برگشتم و استارت زدم. نمیدانستم چه بگویم. نمیدانستم کدام یکی است. با واقعیت خودش کنار آمده یا بدین طریف میخواهد نفرتش را از بدنش نشان دهد. همین که خواستم حرکت کنم گفت: "هی کرارک، زحمتی برام می‌کشی؟" از توی کول پشتی جیب زیبدارش دارش. از آینه ای عقب نگاه کردم. دوباره ترمز دستی را کشیدم. از صندلی جلو دلا شدم و به دستورش دستم را توی کیفش کردم. فقط چند سانتی متری از صورتش فاصله داشتم. نسبت به روزی که از بیمارستان برگشته بود رنگ و رویش باز شده بود قرص مسکن میخوای؟ من چند تا جل... نه خوب بگرد تکه کاغذی در آوردم و به پشت صندلی تکیه دادم یک اسکناس پوندی تا شده بود حالا برو همون ده دهپندیه که برای مواقع استراری کنار گذاشته بودم خب که چی؟ تو؟ برای چی؟ برای خالکوبی نبخندی زد تا وقتی روی صندلی ننشستی باورم نمیشد که خالکوبی کنی یه لحظم فکر نکردم راستی راستی این کارو بکنی